بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه قبلی درس مرفوعات رو خواندیم و رسیدیم به توابع یعنی ما یک سری کلماتی داریم اعراب واحدی و مستقلی ندارن بلکه تابعند اگر تابع مرفوعی بودند مرفوع هستند اگر تابع منصوبی بودند منصوب هستند و اگر تابع مجروری بودند مجرور هستند اولیشون اولینشون نعت هست وصف هست مانند جا رجلون کریمون کریم اینجا نعت هست خب چون تابع رجلون هست و رجلون مرفوع کریمون هم چه هست؟ مرفوع است. رأی تو رجولن کریمن چون اینجا رجلا مفعول بهی هست منصوب هست کریمن که نعت هست باز هم منصوب هست مرر تو به رجولن کریمن چون رجلن اینجا مجروح هست کریمن هم مجروح هست لذا در این درس اعراب توابع رو میخونیم که چار تا هستند قبلا هم خاندین اولینشون چه هست؟ نعت هست النعتو اولین نعت هست تابع للمنعود نعت تابع منعود هست وصف تابع موصوف هست صفت تابع چه هست؟ موصوف هست اعراب موصوف رو دارد فی رفعهی و نصبه و خفضه در اعرابش یعنی اگر منعوت یا موصوف مرفوع بود صفت موصوف است، هست اگر منصوب بود صفت منصوب هست و اگر مجرور بود صفت مجرور هست رفع و نصب و خفض معنیش این هست و تعریفه و تنکیره و دیگه در چی چیزی تابعه موصوف هست تابعه منعوت هست در معرفه و نکره بودن اگر موصوف معرفه بود صفت معرفه است اگر موصوف نکره بود صفت همچه هست است مانند جاء رجل عاقل جاء الرجل العاقل جاء الرجل العاقل البته از این توضیحی که مؤلف نویسنده آورده است ما میفهمیم که نعت بردونه است نعت حقیقی و نعت سببی اگر نعت حقیقی بود اگر نعت حقیقی بود در مذکر و مؤنس در مفرد و تثنی و جمع هم از موصوفش پیروی میکند اگر نعت چی بود حقیقی بود اما اگر سببی بود داستان متفاوت هست چون در نعت سببی نعت همیشه مفرد هست نعت همیشه چه حالا منعود چه مفرد باشه، چه مصنع باشه، چه جمع باشه فرقی ندارد. مانند هایی رو میزنیم جاء از زیدن ال آقلو. تو زیدن آقله، بزیدن ال آقلی. زید چون معرفه هست، صفتش هم چی هست؟ معرفه هست، الفلام داره. زد مفرده صفتش هم مفرد هست زد مذکره صفتش هم چه اما اگر زلی رو مونسی رو مثال بزنیم تو. زینبو العاقلتو جاعت زینبو العاقلتو جاءت جاعت زینبو الاقيله تو چون فاعل مذکر حقیقی هست فعل باید به شکل مذکر حقیقی به کار رود زمانی که بین فعل و فائل فاصله ای هم نباشد خب پس نعت تابع منعوت هست در رفع و نصب و و در معرفه و نکره بودن و اگر این نعت حقيقي بود در مذكر و و در مفرد و جمع هم پیروش هست مثلا رأیتو الزيدين العاقلين آقلین رأیتو العاقلين ال آقلین رأیتو الزیدین به این شکل صفت تابع موصوف هست در عراب در معرفه و نکر بودن در مذکر و انس بودن در مفرد و مسناجم بودن ولی زمانی که حقیقی باشد اما اگر سببی باشد اون موقع در مفرد و مسنع و بودن اون نعت همیشه مفرد هست مانند جا از زیدون العالم ابوه. ببینید جا از زیدون العالم ابوه. خود دوگه مشخص هست این از نوع سببی شه. جا از زیدون العالم ابوهو اگر بگیم جا از زیدون جا از از زیدون بازم میگیم العالم و ابو درست زیدون جمع هست ولی این العالم اینجا وصف سببی هست حقیقی نیست پس حقیقت چونین هست که خلاصه چونین هست که نعت حقیقی در چهار چیز از ده چیز موصوفش رو پیدا مفرد و مثنا و جمع و رفع و نصب و جر و مذکر و مؤنث و معرفه و نکره از این ده تا چیز در 4 چیز ولی نعته سببی فقط در دو چیز در اعراب و در معرف و نکره بودن بس در اعراب و در چه معرفه و نکره بودن حالا که بحث معرفه و نکره مطرح شد در درس بعدی بحث معرفه و نکره رو می آورد المعرفتو خمسه اشیا معرفه پنج چیز هستند الو بعضی از جا میگن المعرفتو معرف شش بود اینور این خب معرفها میگه پنجتا هستند الاسم المضمر یک اسم زمیر زمیرها یا غائبند یا متکلم یا حاضر هو هم، ما هم هيا همنا انتما انتم انت انتما انتم أنتو انا نحنو در میان این زمایر که گفتیم دوتای آخری متکلم بودن شش تای اولی غائب و شش تای وسطی حاضر بودند. خودش مثال بزنید زده است نحو انا وأنت و انت والاسم العلم دومین معرفه اسم عالم همون اسم خاص هست مانند نحو زید و مکه اسمای خاص هستند یعنی زید بر فرد خاص دلالت میکنه مکه بر شهر خاص بر خلاف کلمه شهر که بر هر شهری دلالت میکنه انسان که بر هر انسانی دلالت میکنه رجل که بر هر مردی دلالت میکنه امرaringتل بر هر مردی دلالت میکنه اینا میگند عام اما زید و بکر و تهران و شیراز و زاهدان اینها خاص هستند زاهدان فقط بر شهر خاصی دلالت میکنه پس دومین معرفه اسم علم هست و الاسم المبهم سومینش اسم المبهم هست منهور از اسم المبهم دو تا نوع هستن یکی اسم اشاره و یکی موصولات خودش مثال زیاده است نحو هذا و هذه مذکر و مؤنثش هست و هؤلاء و که جمع هست و اسم های موصول الی الذین اللاتی بس مبهم اسم اشاره واسم موصول هست والاسم الذي فيه الالف واللام چهارومین معرفه اسمی است که الف و لام داره البته در كتب بزرگتر میگند که علامة معرفة معرفه است یا لام یا هر دو تاشون خلاصه الف و لام اسمی که الف و لام داشته باشد مانند الرجل الغلام البته نحر هر الف و الفلامی که تأثیر داشته در کلمه کلمه رو معرفه گرداند خب اینی که اسمهای موصول چه هستند اسمهای اشاره چه هستند و زمایر اینو دیگه ما مفصلا ذکر نمیکنیم خودتون در کتابهای فارسی دیگر حتی میتونید اونجا ضمایر رو حفظ کنید پس اسمی که الیف داشته باشد و آن را معرفه بگرداند این شدن چهارتا و ما اضیف الى واحد من هذه الاربعه هر کلمه که مضاف بشه به که از این چهارتا اون خودش معرفه میگرده اگر کلمه به بزمیر باشه مانند کتابو که کتاب اینجا معرفه شد چرا؟ چون به بزمیر مضاف شد اسم علم مضاف به اسم علم باشه مانند قلم و زیدن قلم معرفه جاستین مضاف به اسم علم هست یا مضاف باشه به ضمائر و موصولات مانند کتاب و هذا کتاب این یا معرفه باشه به کلمه که الفلام داره مانند کتاب رجل پس این پنج تا از معارف هستند در درس بعدی نکره رو توضیح می‌دهت و نکره نکره کدوم هست معرفه البته در تعریف فارسی صادق میارن اونی هست که بر چیز مؤینی دلالت کند تعریفش رو ناورده بود فقط انواعش رو آورده بود نکره رو خودش تعریف میکنه و تو پس معرفه اون لفظی بود که دلالت بر مؤینی بکند ونکره تو کلو اسم شاعین فی جنسه هر اسمی که در جنس خودش شایع باشه لا يختص بهی واحد دون آخر مختص یکی نباشه موقعی که ما میگیم امرأتون مختص یک زنی نیست این کلمه در جنس خودش شایع هست شامل هر زنی میشه پس امرأتون نکره هست رجالان چی هست؟ نکره هست انسانون نکره هست رئیتو کتابن نکره است. یعنی مختص کتاب خاصی نیست شایع هست در جنس خودش دلالت بر هر کتابی میکنه و تقریب و تقریبه تقریب یا تعریفه تقریبه کل ما صلح دخول الالف واللام علیه علامت نکره بودن اینه که صلاحیت اینو داشته باشه که الفلام درش وارد الف الفلام چه شد؟ درش ما این ما مای مصولی هست مای منافیه نیست کل ما صلح, صلح دخول الالف واللام علیه هر کلمه‌ای که صلاحیت این داشته باشه که الف برش وارد بشه و درش تأثیر داشته باشه اولو معرفه ما بگردانه مانند رجل صحیح که ما برش الفلامو بیاریم بگیم الرجل و اولو هم معرفه بگرداند لذا این شد علامت نکره نحو الرجل و الفرس پس غلام و رجل صلاحیتی اینو دارن که الفلام برشون داخل بشه و معرفه بگردانن. الغلام و الرجل این هم خیلی میزان بسیار ساده سادهی بود که برای نکره آورده بود کل ما صحل دخول الالف و علیه هر هران چه که؟ صلاحیت داخل شدن الف برش لام درش باشه و درش تأثیر داشته باشه مثلا از زیدان اگر الف لام بش دادیم این دیگه داستان متفاوت است. داستان چه هست؟ جا از زیدون این شد از نعت ولی از آن جایی که گفته بود نعت در معرفه و نکره بودن پیروه منعوت هست معرفه و نکره رو توضیح داد اما دومین تابع اونی که اراب مستقل نداره تابع متبوعش هست عطف هست و حروف العطف عشرة حروفی که عطف میدهند منگورش عطف نسق هست ما نقولش دوتا عطف اتف داریم عطف بیان و عطف النسخ حروف عطف دهتو تا هستن و هی الواب و الفاء و ثم و او و ام و اما و بل و لا و لكن و فی بعض المواضع البته حتا در بعض جاها پس عطف معنای اصطلاحیش و معنای لغویشو اینجا خواهیم خواند عطف در اصطلاح بر, بر دو نوع هست در اصطلاح بر چند نو هست یا عطف بیان یا عطف نسق عطف بیان که در این درس موضوع بحث ما نیست یک تابع جامدی هست که اگر اون مطبوعش معرفه باشه مانند جاء زید اخوک، خب اینجا واضحش میگرداند اما اگر در نکره باشه خاصش میگرداند نکره باشه چیش میگرداند؟ خاص پس عطف نسق داریم که حروفش دهتا تا بودن بیان کرد عطف بیان داریم مانند جا از دونه اخو که. حالا این مثال رو ترکیب کنیم میگیم جاع فعل مازی زیدون فائل اخو عطف بیان هست چون اومد زید برادرت این اخو همون زیده این اخو همون که هست زید هست داره بیانش میکنه داره چیکارش میکنه که در معرفه ها واضح میگرداند و در نکره نکره رو خاص میگرداند در قرآن کریم مومده است من ما این صدید من ماء صدید, صدید میگه عطف بیان ما هست که ما رو خاص گردانیده است خب حالا دقتی داشته باشیم عطف نسق چه هست؟ عطف نسق اون تابعی هست که بین اون و بین مطبوعش یکی از حروف دهگانهی که خوندیم میاد ماننده جاع زیدون و بکرون میگیم جاع فعل مازی زیدون فعل و حرف عطف بکرون میگیم عطف نسق هست اعراب چه رو داره؟ اعراب مطبوعش رو داره جا از زیدن و بکرون رعی تو زیدن و بکرن مررت تو بزیدن و بکرن پس دقت بفرمایید در تعریف عطف نسق تابعی است که بین اون و بین مطبوعش یکی از حروف عطف آمده باشه که حرفای عطف رو بیان کرد البته این حروف هر یکیشون معانا... معانی دارند چون کتاب کتاب کوچیکی هست و ما خیلی مختصر توضیح میدیم معنای حروف رو اینجا بیان نمیکنیم واف چه معنایی دارد فا چه معنایی دارد ثمه چه معنایی دارد او چه معنایی دارد ام چه معنایی دارد اما چه معنای دارد، بل چه معنای دارد، لا چه معنای دارد، لاکن نه و حتی که شدن دهتا، ایلا هر کتشون معنای دارند و برای یک طلبه دینی یا برای یک آموزنده عربی که میخواهد آینده عدیب قوی باشد، مترجم قوی باشد باید معنای حروف را بیاموزد لذا مراجع شود به کتب دیگر و الحمدلله که این روزها کتاب فارسی زیادی در این باب ترجمه شدند و اصلا, اصلاً به زبان فارسی تعلیف شدند. به زبان فارسی چه شدند؟ پایان دانشگاهی، مدرسین دانشگاه ها، مدرسین حوزه در این رابطه کتاب خیلی مفصل و علمی نوشتند خب، حالا حکمش رو میگه فان عطفت علی مرفوع رفعته میگه اگر عطف دادی بر مرفوی اونو مرفوع, مرفوع میگردانی مانند جاء زید و سعید او علی منصوب نصبته اگر بر منصوبش عطف بدی اونو منصوب میگردانی مانند رأیت زیدا و سعیدا او علی مخفودن خفض اگر عطفش دادی بر مخفوظ خفضت اون موقع چکارش میکنی کردی مجروف او علی مجزوم جزمت اگر بر مجزومش عطف بدی مجزومش میکنی ماننده زید لم یضرب و یقوم ببینید زید لم یضرب و یقوم تقولو مانند قام زید و امرن رأیتو زیدن و امرن مررت بزیدن و لم يقوم و لم لم يقوم ولم يقعد لم یقعد پس بحث توابه بحث خیلی سادی است ولی بعد ان رو شناخت اولین توابه که خوندیم چی بود؟ نعت بود صفت بود بعد از اون عطف بود که عطف بیان رو مفصلا توضیح داد عطف بیان رو براش مثال نزده بود خودمون مثال میزنیم به خاطر این که مثال نعاورده بود میگیم جا از ای دون اخوک رأی تو زیدن اخاک مررت بی زایدن آخری که شدید جاء عمر امیر المؤمنین رأیت عمر امیر المؤمنین مررت بعمره امیر المؤمنین خوب در این مثال آخری مررت بعمره امیر المؤمنین اینجا آید در ایراب تابعه متوش هست یا نیست امیر؟ مررت تو به عمره امیر المؤمنین آقای مولان محمد هست یا نه؟ هست چرا؟ عمر غیر منصرف مجرور هست چون غیر منصرف فتحه گرفته ولی امیر دیگه غیر منصرف نیست امیر چی میگیره؟ کسری میگیره امیر در ایراب تابع عمر هست ولی علامت نس فقط متفاوته عمر مجروره امیر هم مجروره پس در رفت تابع هم هستند و سوومین، سومین نوع از انواع تابع تأکید، توکید هست التوکیدو توکید تابع للمؤكد، تابع مؤکد هست همانطور که صفت تابع موصوف بود معتوف طابع معتوف عليه بود توكيد طابع چه هست مؤكد هست في رفعه در چهش در رفعه و نصبه در نصبش و خفضه در مذرور بودنش و تعریفه و در معرف بودنش فس توكيد طابع معكد هست ما دوتا توكيد دارين توكيد لفزي و توكيد معنوی توقید لفظی اونی هست که لفظ تکرار میشه مانند جا محمدون محمدون جا محمدون میخوایی تأکید کنی که محمد بوده محمد رو تکرار میکنی لذا ترکیبی سنی میشه جا فعل ماضی محمدون فاعل مرفو بازمه محمد دوم دو توقید هست چون محمد اول که معکد هست مرفوعه محمد دوم دو که توقید هم هست چی هست مرفو بعضی البته تأکید رو به کار میبرن ولی توکیدش فسیحتر هست و بهتر یا فعلو رو تکرار میکنی جا جا محمد الی آخر تأکید معنوی یا توکید معنوی اون تابعی هست که ذکر میشه تا احتمال خطا رو برطرف کنه تاکید معنوی در درس بعدی خواهد آورد که با الفاظ خاصی میاد و یکونو به الفاظ معلومه و تاکید معنوی با الفاظ معلومی میاد و هی عبارتند از النفسو العینو وکلون واجمعو اینها هستند و تابع و بعضی از کلمات که تابع اجمع هستند اکتا و ابتا و ابصح اکتا و ابتا و این الفاظ الفاظی هستند تاکید معنوی هستند حالا با مثال خودش مثال می آورد توضیح بیشتری خواهیم داد تقولو قام زید نفسو موقعی میگیم قام زید نفسو این نفس اعرابش چه هست؟ چه اعرابی داره؟ بله توکید هست توکید معنوی هست قام فعل مازی زیدون فائل مرفو با زمه نفس و توکید زید هست مرفو با زمه حالا اگر این زید اعراب ای داشت نفس اعرابش تغییر میکرد چون تابع مطبوعش بود توکید تابع مؤکدش هست مؤکد اینجا فائله مرفو نفس هم شده مرفو در مثال بعدی اصل این مثال در حالت نقش می آوری رعی تو زیدن نقشه رعی تو زیدن نقشه مرر تو به زیدن نقشه پس توکید تابع مؤکد هست در ایراد اگر مؤکدش از مرفوعات بود توکید مرفوعه از منصوبات بود توکید از منصوباته اگر مدرو بود از مجرورات هست مانند مثالی که گفتیم. و مثال دیگه آورده است و القوم القومه کلهم رعیت القومه کلهم قوم مفعول بهی هست چون مؤکد منصوبه کلهم چه شده منصوب شده حالا اگر ما اینو در مثال مرفوعی و مجروری بیاریم اینجوری میشه جاء القومه کلهم رأیت القومه کلهم مررت بالقومه کلهم پس توقید طابعش هست و مرار تو بالقومی اجمعین سعی کرده است از امثله مختلف بیاورد یک نقطه رو البته در نظر داشته باشیم اگر مؤکد مفرد بود زمیر هم چه هست؟ جاء علی نفسهو اگر جنبود بود مؤکد زمیر هم چی بکار میره؟ جمع بکار میشه و خود توکید هم جمع بکار میره مانند جا الرجال و انفو صحو. جا الرجال و انفو صحو. فسجد الملائکتو کلو هم پس دقت داشته باشید اگر مؤکد مفرد بود توکید مفرد هست و زمیری که به شوسته مفرده و اگر جم بود زمیر و, مؤ... و توکید جم هستند جا از ایدون اینوه حبرال کتاب مثالی است که صاحبه تحطستانیه آورده است. حبرال کتاب اعیونوهم یک نقطه رو آورده است شارح میگه اگر مؤکد مسننا بود مانند جا الکاتبان یا جا الرجلان میگه افسح همین هست که زمیر مصنا باشه حضر الرجلانی انفسهما حضر الرجلانی ببینید اگر مؤکد مسننه بود مانند حضر الرجلان اینجا مؤکد کدوم یکیه که فائله میگه خسیحتر همینه که زمیر مسننه باشه ولی توکید جنب باشه زمیر مسننه باشه اما توکید چه باشه مانند حضر الرجلانی دیگه نمیگیم نفسیهما میگیم انفسو هما مؤکدو توکیدو جنب کار میبرین بولی زمیرو مصنه ان حبر الرجلانی انفسو انفس جنب یا جنب هما مصنه هما چیست؟ مصنه هست فسجد الملائکتو کلهم اجمعون اینجا هم کل رو آورده هم اجمعون رو با کلمه اجمع بعد از کلش آورده چون زمانی اینو توکید کار گرن که بعد از کل بیاد اینو غالباً بعد از سیو کل بکارو گرن پس این شد از تأخید از بحث توکید صفت بیان شد با شرایطش عطف با دو بیان و نسخش عطف بیان و نسخ تموم شد توکید که هم لفظی و معنوی بود تمام شد رسیدیم به البدل رسیدیم به چه؟ بدل اذا ابدل اسم من اسم او فعلا من فعلا تبعه في جمیع اعرابه زمانی که بدل شد عوض شد بدل معنی لغویش البته عوضن اسمی از اسم دیگر یا فعلی از فعلی دیگر در تمام اعراب از اون چکار میکنه؟ پیروی میکنند در تمام اعراب چکار میکنند در اصطلاح نحوی ها بدل رو چی میگند تابعی که در حکم, در حکم مقصد همون مطبوعه مقصد همون چه هست مطبوعه مثلا اینجا دقت بفرمایید جاع زیدون صدیقکا. دکتر جا جع زیدون کا زید با صدیق با هم صرف دارند. آمد زید دوستت. این صدیق همون کیه؟ همون زید. این صدیق همون کیه؟ پس نحوی ها میگن تابعی هست که حکمش اصلا با زبانی ساده تر بدل بدل از همون چه هست. از مطبوع است، همون مطبوع است، همون چه هست. همون مطبوع هست حالا دقت بفرمایید بعدا البکه انوایی داره که در انوایش بهتر و اوازه خواه شد پس میگیم جا صدی جا زیدن صدیقو که بگیم زیدن فائل مرفو با زمه صدیقو بدل مرفو با زمه چون اینجا تابع مرفوعی هست رأی تو زیدن مررت مرأ تو به زمانی که بدل شد اسمی از اسمی یا فعلی از فعلی در تمام اعراب از اون چچکار کرد پیروی میکنه. و هو على اربعة اقسام بدل بر چهار قسمست بدل بر چند قسم هست بر چهار قسم هست بدل کل از کل بدل الشیء من الشیء بدل کل از کل که بدل مطابقه هم نامیده میشه همین مثالی که الان گفتی همین مثالی که الان ذکر شدیم بدل کل بود بدل تی بود؟ کل از کل بدل مطابقه بدل بعض داری بدل بعض بدل جزئی از مبدل من هست در بدل بعض در بدل بعض از کل بدل جزئی از مبدل من هست دقت بفرمایید ماننده ماننده اکلت الخبز نصفه اکلت الخبز نصفه خب خب خبز میشه مفعول به منصوب باختی نصف آیا کل این خبز هست یا جزئی از خبز جزئی پس این شد بدل جز از کل بدل چی؟ یا مثالی که نویسنده آورده است حفیظت القرآن ثلوثه او نصفه او ثلثه الوات در این نوع یک زمینه باشه که به مبدل منه بگرده پس نوع اول بدل کل از کل بود که آورده بود کتاب بدل الشیء من الشیء و بدل البعض من الكل بدل بعض از کل که مثالش رو گفتیم و بدل الاشتمال سومین نوع بدل اشتمال هست ببینید در بدل اشتمال ارتباط کلی و جزئی وجود نداره اصلا کل کلمه این شامل بودند حالا در بفرمایید در مثالهایی که میاد متوجه خواهید شد اعجبتن الجاریتو اعجبتن الجاریتو اگر ما میگفتیم اعجبتن الجاریتو این جاری رو اینجا به منی دختر بگیریم اعجبتنی الجاری تو بنتوکه به پدر می به تعجب انداخنه را دخته الجاری تو اعجبتنی معذرت مثال شیچونین هست اعجبتنی زینبو جاریتو کا. این می مثال چی؟ مثال کل از کل چون جاری همون که هست؟ همون زینب هست اگر قسمتی از اونو می گفتی شد بدل جز از کل حالا اینجا نه. اینجا بحث کل و جز نیست موعکمیم آگجبت اعجبتنی الجاریت تعجب انداخت مرا جاریه حدیثها سخنش که حدیث یکی از صفات یکی از صفات چه هست؟ جاریه هست اه شا اه مرتبط با جاریه هست اما نه جزء جاریه هست و نه کل جاریه نه جزء جاریه هست و کل جاریه یا موقعی که میگیم رأیتو محمدان کتابه ببینید رأیتو محمدان کتابه اینجا آیا این بدل بدل کل هست یعنی این کتاب کل اون محمده خود محمده میگیم نه جزی از محمده نه اما مال محمده مرتبطه بکیه محمده پس اینو میگن بدل اجتمال و چهارمین نوع از بدل بدل غلط هست که خودش بر سنو هست که ما کاری نداریم یک مثالی میزنیم چون کتاب رو خلاصه توضیح میدیم شما در بدل غلط اینجا دقت کنید میخواد اشتباه میکنید میگید رعه تو انسانن بعدا متوجه میشید که اشتباه کردید این انسانی نیست بعدا میگید رعه تو انسانن بعدش میگید در حالی که عصبیه اینو میگن بدل غلط لذا اینجا هم بدل غلط اعراب بدلو داره پس تا اینجای کار توابع تموم شدن، درس بعدی منصوبات خواهد بود. فقط این نقطه رو مؤکدن ذکر کنم که این چارتا چیزی که بیان شدن یعنی صفت، عطف با دو بعدی چی بود؟ توکید و بدهد. اینا اعراب مستقل ندارن در واقع اینا هم در بحث مرفوعات بحث میشن هم در منصوبات و هم در مجرورات و اولایی که مجزوم میشن در مجزومات چون اینا اگر تابع مرفوعی بودند اعراب شیل مرفوع تابع منصوب منصوب و تابع مجرور مجرور مانند در صفت میگیم جا رجل آقلون در عطف میگیم جا رجل و امرأتون در توکید میگیم جا الرجل نفسه و در بدل میگیم جا الرجل اخوکه اومد مرد برادرت اون مرد کیه؟ برادرته لذا در هر چهار تابع تابه بودند. یک شباحت های نزدیکی بین عطف بیان و بدل وجود دارد که اصلا گاهی موقع هم میشه گفت این عطف بیان هست و هم بدل کل هست هم عطف بیان هست و هم چی هست خب بدل هست موفق و پیروز باشید